We don't خب دوستان چه نبنده خسته نباشی ساعت 9 ها 9 دقیقه بامداد هست در ادامه برنامه امروز همونطوری که قبلا گفته بودم آقای رضا طریمیان نماینده سوشال دموکرات‌ها در شورای شهر آووس در مورد مسائل دانمارک به طور مستقیم گفتگو خواهند کرد و همونطوری که در آغاز برنامه خدمتون عرض کردم خانم تینا شاسوند بغدادی ساعت 9 بامداد امروز در استودیوی رادیو الباستشیو آوردند در مورد ایجاد اشتغال برای خانم هایی که کمک مالی از شهرداری دریافت می کنند با شما گفتگو خواهند کرد ما تا چند لحظه دیگر این گفتگو رو آغاز خواهیم کرد خانم تینا شاهسوند بغدادی خوش اومدیم به استودیو رادیو البارسی مرسی با سلام و تشکر جهت اینکه این امکان رو امروز به من دادیم تا از این طریق بتونم با هم وطنم خوبم ارتباط برقرار کنم من همونجوری که فرمودی تینا شاهسوند هستم 28 سال سن دارم و تحصیل کرده در رشته حقوق اقتصاد از دانشگاه آووس هستم و در حال حاضر در یک شرکتی به اسم نویک کار میکنم و اینها یک پروژهی دارن پروژه مخصوص خانم های خارجی هستش که اینها میخوان کمک و سپورت کنن خانم های خارجی رو که بتونن روی پای خودشون وایستن به قول معروف بتونن سلستندی بشن و ما میتونیم با مشاوره رایگان میتونیم کمک این خانم ها بکنیم و مکان ما هستش ادوین قاصی بغل بازار وست شماره 32 قبل از اینکه ادامه بدید صحبت های خودتونم میخواستم سوال کنم که این ایجاد اشتغال برای فقط خانم خارجی هست بله و در برای خانم که کمک مالی از شهرداری یا کمان دریافت میکنن بله. برای اونا هست بله هدف این پروژه این هستش که بیشتر برای تمام خانم های خارجی هست یعنی فقط مال ایرانی ها نیست مال تمام خانم های خارجی هست و بیشتر ما فکوسمون روی خانم هایی هستش که کنتندیلپ پنگه و یا قولدین میگیرن و از این طریق ما میخوایم بهشون کمک کنیم که بتونن روی پای خودشون وایسن با بشاوره رایگان کلاس هایی داریم روزای دوشنبه از ماه آگوست شروع میشه کلاس به معنای این نیستش که خانم ها بنشینن ما بیایم بهشون درس بدیم کلاس این هستش که خانم ها دور هم جمع میشیم بعد هر کسی اگر نظری داره و چیزی رو که میخواد بدونه و یا یاد بگیره که بخواد در آینده خودش به قول معروف روی پای خودش وایسه یا سل بشه به ما از ما درخواست میکنن ما یک منتور رو یعنی یک نفر که بتونه بیاد راجب برفرض مثال امور مالی وکیل بتونه راجب مسئله که خانم ها میخوام براشون توضیح بده و در این پروژه پروژه 13 ماهه هستش که از ماه یونی شروع شده ما سه تا کنفرانس داریم کنفرانس اولمون یا در ماه سبسام یا در ماه آگوست هنوز تاریخش گذاشته نشده این برنامه کنفرانس اول بر این هستش که به خانم ها بگیم که اگر واقعا دوست دارن که روپای خودشون وایسن یا سلسندی بشن اصلا کار مشکلی نیست و میتونن و این کار شدنی هستش و ما چند تا خانم های مختلف بین پنج تا شیش تا خانم مختلف و که روپای خودشون بودن یعنی هستن الان از در... مثل آرایشگاه لباس یعنی بوتیک کاسمتولو یعنی رشته هایی که به هر حال خوندن یا دوست داشتن یا علاقه داشتن این خانمه ها رو دعوت می میکنیم که توی این کنفرانس شرکت کنم و برای خانمه توضیح بدن که چجوری از پایه شروع کردن چجوری همه که بقول من وام گرفتن پول از کجا جور کردن جارو چجوری جور کردن از کجا کمک مشاوره گرفتن همه اینها توی کنفرانس اولی هستش کنفرانس دوامی مونم چند تا منتور های مختلف از طریق از اسکت ویسنیت از وکلا خواهش میکنیم از انتقاشونس مینیستا خواهش میکنیم که بیان اونجا و کمی راجع به این مسائل مسائل عمر مالی یا حقوقی با خانم ها صحبت کن یا اگر سوالی داشته باشن کنفرانس سوامم یک جمعی از کنفرانس اول و کنفرانس دوم هستش اگر شنوندگان گرامی رادیو البرز بخوان با شما تماس بگیرن و از این پروژه مطلعه بشن ماله. محبت کنید شماره تلفن یا آدرس الکترانیکیتونو مطلعه شماره تلفن خود شرکت هست 827-400 400 و شماره موبایل من هست 40 ۵2 7401 <تصفيق> که میتوننم با من تماس بگیرن از ساعت ده صبح تا چهار بعد از ظهر و آدرس پستیم الکترنی ایمیل هم هست تینا این پروژه همونطوری که فرمودید فقط برای خانم خارجی است بله برای آقایان نیست. شرکتی که من کار میکنم چرا آقایون هم میتونن تشریف بیارن میتونن بیان اونجا قوی گیونینگ مشاوره مجانی بگیرن من فقط این پروژه خانم ها رو به عهده دارم ولی آقایون هم چرا میتونن به شرکت ما مراجعه کنن و یه نکته مهمی هم که اصلا اینو بگم که اصلا کسایی که خانم ها و چه آقایونی که تشریف میارن پیش ما هیچ مبلغی رو برای مشاوره نباید پرداخت بکنن چون مشاوره ما از طریق سوشیال فونت از طریق ایو از طریق اوابان اینا همه به قول معروف سوپورت شده و ما حقوقمون رو از اونها میگیریم خانم ها میتونن رایگان یا آقایون میتونن اینجا رایگان بیان و مشاوره رایگان بگیرن خیلی تشکر میکنم خانم تینا شاسوند بغدادی از اینکه در استودیو رادیو البارت حضور پیدا کردین اگر صحبتی نگفتهی مونده میتونید مطرح بفرمید؟ نه متشکرم منم مجددا تشکر میکنم از راژیه البورت مخصوصا آقای مصطفی که لوت کردین این اجازه رو به من دادین که من کمی راجع به این پروژه امروز توی رادیو صحبت کنم متشکرم cash